از صادق سلام و علیه فرمود به ابن جندب فرمود فرمود ابن جندب هر کسی که از شیعیان ماست لازم است که در هر روز یا هر شب حساب کند کار خودش رو و اعمال خودش رو و در این جهت دقت کند که آیا گناه کرده یا تاعت کرده اگر این چنین بکند و حساب کند کار خودش را از خزی و خاری روز قیامت نجات پیدا می کند این روایت چقدر روایت راجع به حساب کردن انسان اعمال خودش رو حساب کنه؟ بالاتر از روایت قرآن شریف یا ایوه الذین آمنتق الله ولتنظر تنظر ما قدمت لغت واجب است و باید هر کسی نظر کند که فردا برای فرداش چه کرد ول تنظر باید نظر کند و دقت کند که برای فردای قیامتش چه کرد اینو باید نظر کرد. اینو می برای به این مطلب روایات لا ماشاءالله داریم. بعضی روایات که ساعت‌های وقتش رو تقسیم کنه. یا ساعت فکر کنه کارهایی که انجام داده. امروز چه کارهایی انجام دادم؟ اگر نیکو انجام داده کارهایی نیک انجام داده. چکر کند خدای آلا را که من موفق به طاعت شدم، اگر گناه کرده زود استغفار کنه زود توبه کنه تصمیم تدارک بگیره تا اعمالش رو گناهانش رو زبط نکردن و ننوشتن که تو روایات داره هفت ساعت مهلت میدن تا ننوشتن استغفار کنه که ننویسم حساب کنه کاروش و کسی که حساب کند کار خودش رو قهران متوجه اعمالش میشه و نتیجتا در مقام تدارک و اصلاح کارش بر چه کرده اگر این کار رو بکنه این امیده به این است که قدم به قدم شروع کنه به اصلاحات کارو در اون هفته قبل این جمله رو ارز کردیم که بعضی از بزرگان مفرماید که کسی که میخواد حساب کنه کار خودش رو اولاً باید واجبات و محرمات و وظائفش رو بشناسه تا بتونه حساب کنه که این کاری که کردم درست بود یا نادرست پس اول باید مسائلش رو یاد گرفته باشه و زائفش رو بلد باشه درست بود این کار من یا نادرست نه کجا باید بفهمم باید مسئلم رو بلد باشم اگر مسائلش رو بلد نباشه این نمیتونه حسابگر باشه این یه مطلب بود مطلب بعدی فرموده بود که بایستی که با ترازو یا عدل حساب کنه آدم وقتی حساب میکنه کارای خودش رو میخواد حساب کنه هرچی بده مسامحه میکنه کارای دیگران رو بخواد حساب کنه ذره رو به قول ما میگه مورو از ماس میکشه برچیه این ترازوی عدل درباره خودش اجرا نکرده با ترازوی عدل نکشیده یه yeah. جمله ای در آخر اب آخر نجول بلاغه من جایی که کلمات قصار موجوده یه تیکه ای رو از امیرالمومنین سراتو الله علیه نقل میکنه و تو به بهار همون رو نقل میکنه ولی میفرماید قال فی وصل مقصرین امیر در وصف مقصرین این اوصاف رو کسانی که اهل تقصیرند و کننده کنندهی در اعمال خودشون هستند این اوصاف رو در وصف اونا کرده. ولی علا کلها در آخر, نع، آخر نعجل بلاغه این مطلب موجوده در بهارم همین روایت موجوده و اونجا صفات مقصرین را بیان فرموده یکی از صفاتش اینه که فرموده است فهو علی الناس طائن و, و نفسی مداهن به مردم که میخواد برخورد کنه و حسابهای کارای مردم رو میکشه دقت میکنه و هر کوچکترین چیزی رو به اونها تعنه میزنه ولی نوبت حساب خودش که میرسه با خودش مداهنه میکنه مداهنه یعنی کاری کردن، ماسمالی کردن به قول خودمون با خودش میخواد عمل خودش رو حساب کنه، مداهنه میکنه می شود به اینکه چندین جمله متعددی داره حالا این از مهم غیره ما یستقل و اکثر من هم نفسه معصیت دیگران را بزرگ میشهره و خودش بیش از اون معصیت و بالاتر از اون معصیت انجام میده ولی مال خودش کوچیک میشره. این ترازوی عدل رو دست نگرفته این خواسته های خود و میل خود خودش رو دست گرفته یعنی من با مزاج مبارکم چیچی سازش داره از خودم خوشم میاد خودم رو دوست دارم اعمال خودم رو میپسندم اعمال دیگران رو عبگیری میکنم تو حساب دقیق رو کار خودت نمیتونی بکنی صلاحیت نداری از میشد به اینکه یحکم و ال غیر لنفسه نفسه، ولا یحکم و حال غیره، دیگران رو محکوم میکنه اگر حق خودش ضایع بشه، ولی هیچ وقت خودش رو محکوم نمیکنه اگر حق دیگران رو زایع کنه. همونی که بغله شاید شخص سعدیه میگه به برایی مال مسلمانو، چون ما لطفه برند و فریاد براری که مسلمانی نیست گناهان دیگران رو بزرگ میشماره و اونا رو محکوم میکنه اگر حق رو خودش رو ضایع کنن ولی اگر خودش حق دیگران رو ضایع کنه و بالاتر از ضایع کردن اونها بیشتر ضایع کرده ولی خودش رو هیچوقت محکوم نمیکنه که من بعد کردم این است که صلاحیت نداره که ترازوی عدل بکشه کارای خودش رو مقایسه کنه و خلاصه خوشبینی خود خودش رو دوست داشتن هواها، حوثها انسان خودش رو دوست داره خوب به اینا نمیذاره این آقا درست با ترازوی عدل اعمالش رو بکشه یکی دو جمله دیگه از این جمله رم هم بخونم فرمود به اینکه یغلبहू یغلبहू تغلبहू نفسو علی ما یذم ولا یغلبها علی ما یستقن نفس او هواهای نفس او بر او غلبه پیدا می کند در چیزی که گمان دارد ولی نمیتواند خود او غالب بشود بر هوای نفس در چیزی که یقین دارد یقین دارم ولی معظالش غالب نمیتونم بشم بر نفس خودم یقین دارم کارگناه است. یقین دارم جزاش آتش است. خب دیگه صفتر و سختتر از این آیه الذين الذین اموال الیتاما ظلما اینما یعکلون في بطونهم نارا آیه یه روا مثلا چی بود آیه که فرمود فردن و به حرب من الله را اینه که یقین داری نمیتواند نفس تو غلبه نفس تو غلبه پیدا کند تو قدرت غلبه بر نفست نداری هوای پول تو رو میکشه به این گناه و نمیتونی جلو خودتون نگه داری ولی به امید چرا این گناه ها خدا کریمه خدا کردیم خدا کی کریم حرفی درش نیست ولی آیا اون کرمش در ماره بنده شقی هم جاریه؟ اون کرمش یا نه با خیالات خودمون رو معطل کردیم اول این جمله اول این جمله یا این خطبه که مثلا حالش شاید خطبه هم نباشه ولی اول این جمله لا تکن من یرجل آخرتا به غیر عمل نبادا از کسی باشی که منتظر های آخرت باشی بدون کار کردن این از همین قبیل امیدها خیالات و بر من غلبه پیدا میکنه گناهان قطعی که اقاب قطعی داره متکب میشن یقل هو نفسه به زن ولا یقلبه به ما یستقین علیه ها بر نفس خودش نمیتونه با یقینهایی که داره غالب بشه این ترازوی عرد رو نمیتونه به دست بگیده نمیتونه حساب و کار درست بکنه از شود به این که جمله این جمله زیاده ولی این جمله نهجل بلاغه در نهجل بلاغه اگه بخواد پیدا کنید صفحه هزار و سد و بلاغه آخرهای نهجل بلاغه به هرها آیشه در روایت داره که آیشه یه زنی فقیری مسکینی فقیری یه چیزی حدیه اوورده بود برای آیشه مثلا من نرز میکنم یه کاس آش اوورده بود مثلا من نگفته تو روایت که چی اوورده بود یه چیز مختصری حدیه اوورده بود آیشه قبول نکرد من دو خدام ره در روایت داره که آیشه به پیغمبر از کرد یا رسول الله فران زن که فقیر بود آورده بودی چیزی هدیه و من قبول نکردم رسول خدا چی فرمود بهش؟ فرمود به این که قبل بلتها منها چرا قبول نکردی؟ مثلا پیش خودش عذروس کرده بود که این فقیر بود حالا این یک کاسه آشش ممکنه برای نهار خودش کافی باشه ولی من من بگیرم نهارش هم معطل میمونه ازل فرمود الا قبل تها چرا اینجور کردی چرا قبول نکردی و کافی تها ها بعد میخواد خوبی رو قبول بکنه به قدر او یا بلکه بیشتر از او چیز دیگری بهش بدی بله که اگر این کار رو میکردی و قبول میکردی فلا ترا انک حق یا آیشه این پیش خودش نمی رفت قصه بخوره که این مرد کوچیک شمرد چون گلا بودم ایو از من قبول نکرد. مخواستی قبول بکنی اگه واقعا قصه فقرشو میخوردی یه چیزی بیشتر بهش میدادی خب حالا مطلب سر این یک کلمه است. حضرت فرمود که یا آیشه توازعی فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُحِبُّ الْمُتَوَازَعِينَ وَيُبْغِذُ الْمُسْتَكْبِرِينَ متوازه و داشته باش در مقابل بندگان خدا خدا متوازه و دوست داره از متکبر بعدش میاد این چی مخواد بگه این روایت به قول بنده اینو مخواد بفرماید که آدم گاهی خیال میکنه کارای خوب داره میکنه ولی واقعا بعده این خیال میکنه ولی در حق این فقیر خدمت کرده که غذاش رو نگرفته مثلا اون حدیهی که آراج رو نه این باطنش توش تکبره این نمیتونه تکبر خودش رو بیابه و بفهمه به این صورت به ما سر صورتش میده میگه این فقیر بود نخواستم ازش چیزی بگیرم، ضرر می‌خوره به. از این کلمه رسول خدا سواله و حاله یا عایشه تواضعی فإن الله يحب المتواضعین و یبغض المستکبرین خدا از مستکبرین بدش میاد معلوم میشه تکبر اونو وادار کرده نگیر این میتونه میزان ترازوی عدل دست خودش میگیره میتونه حساب کنه کدوم کارام بعد کدوم کارام خوبه این صلاحیت نداره از می شود به این که این هم مال ای از می شود زم و رجل نکاتی توی این روایات پیدا میشه زن زم و رجل نفسهو فی المجلس تون اگه انسان خودش رو در حضور جمعی مزمت کنه این در واقع میخواد تعریف رو بکنه میگه ای آقا ما روسیا هستیم تا نداریم نمیدنم چه از اون قراباز کاره آدم باید جانب خدای تعالی تواضع کند و اقرار کند و بدی هار. این میخواد خود رو مرد البته شاید مولا پیدا بشه یک کسی که آدمی واقعا آدم خوب باشه ولی ما و همواتیم و گناهکاریم و روسیاییم و اینا این میخواد تعریف کنیم زم نفسه او نفسهو فالمجلس در حضور دیگران مذمت از خودش کردن این خودش رو میخواد به خوبی معرفی کنه و چون اون رو کویاسی این اون باطنش خرابه جدیه قصی روایت دیگه هم در حق علمای شریه به این مطلب است رسول خدا فرمود از شهوت الخفیا شهوت پوشیده و خفی که آدم نمیشناستش اشهوت الخفیه العالم عالم بو ان یجل سائلی عالم به صورت اونی که مثلا ظاهر مطلبه، بیان براتون مسئله بگم بیان برای اخلاق بگم بیان براتون اعتقادات بگم ولی اون اعماق دلش رو باید نگاه کرد که دلش میخواد مردم دورش جمع بشن یا نه قرازش چیه؟ اون شهوت خفیه است یعنی یه خواست دلشه ولی بر خودش هم پوشیده است نمیفهمه ادار کارش اینا رو باید قیامت حساب بکنن اینا رو باید خدای تعالی حسابش بکشه اینا مربوط به قیامت از شهبت الخفیه این مطلب شهبت خفیه العالم یحب و انیجلس و اله بیان اطرافش بنشینن این عالم مبتلای به شهبت خفیه این درد بیدرموناست که به این زودی اصلاح نمیشه ها این درد بیدرموناست و الا اگه آقای بود که میفرمود که اگر من بدانم اون آقا بهتر از من تبلیغ میکنه میگم بفرمود شما بنده این پایی میشنم گوش میکنم که حاضرم من به این حرفا همون شهوت خفیه است، به صورت دیگه در اومده این مطال. حساب ترازوی عدل دست ماها نیست و ما صلاحیت نداریم ولی اونی که عرض میکنیم همینه که اون شبم هم کردم اون واضح واضح که میتونم حساب بکنم چقدر مثلا مال مردم خوردم چقدر دروغ گفتم چند تا قیبتم روز کردم اینا رو که میتونم حساب بکنم حالا شهوت خفیه رو نتونم حساب بکنم تکبر آیشه رو نتونم حساب بکنم که این تکبر بوده و مانع شده از اینکه این هدیه این رو قبول کنه اینا رو من عقلم نمیرسه حساب نمیتونم ولی درست و حسابی شو که حساب بکن حساب بکن که چه کردی؟ و اگر تو راه افتادی و قدمی در این راه برداشتی منتظر لطف خدای تعالی باش که الذین جاهدوا فینا لنهدیان نهم اگر در راه ما کوشش کردیم ما راه ها رو برات دوا میکنیم دیگه بهت میفهمونیم اون شهرت خفیه رو هم حالت میکنیم بهت میفهمونیم کجای کارت اداره استکبار است یا ترحومه بر فقیر است این حالید میکنیم راه رو برات واز میکنیم تو در راه بیوفت خدا یا ما تو داره حساب کردم میخوام کار حساب کنم کار باز که خودم عقلم میرسه چقدر پول مردم رو خوردم چقدر دروغ گفتم چقدر غیبت کردم؟ چقدر بیخودی خودی تو سر مردم زدم اینا رو که میتونی بفهمی اینا که میفهمی خود اصلاحش بکن اون وقت ببینیم که خدا تعالی راهها رو برای تو باز میکنه یا نمیکنه ما میکنه خدا فاز میکنه را برای انسان این کلمه آخرم بگم و تموم شد فرمود به اینکه که اگه یه تاعت دیدی. همین آقای که میگه حساب کارتو بکن اول عالم باید باشی و ثانیان ترازوی عرد دست بگیری و ثالثا اگه گشتی کاراتو پیدا کردی کار خوب نوادا خیلی خودت رو آقای خوبی حساب کنی ها؟ تو کن خدای تعالی را بدان و آگاه باش این کاری که خوب خوبی از تو صادر شده لطفی بوده از جانب او خدایا بر این مطلب تو رو شکر میکنم که مرا موفق کردی به این کار نبادا از خودت حساب کنی رو که اگر از خودت حساب کردی اینی هم که داری خراب کردی اوج است و عج اعمالنی که انسان رو از بین میبره نبادا خود تو حساب کنی کاری هست هستنشاالله الله خده محمد.